وقتی دوباره آسیه را میبینم، میلی به رو شدم با او را ندارم. برایش سرتکان میدهم و پشت سر روحامی حرکت میکنم. وقتی شیشه را به دست میگیرم تا وارد توالت شوم، یک لحظه چشمم به چشمهای روحامی میفتد. چشمهایش میخندد. جلو می آید. چادر تو بده به من. و وکیفم را به او میدهم. چادرم را که روی دستش میاندازد، احساس میکنم او نزدیکترین کسم است از بیمارستان بیرون میاییم. همان مرد یک پا به ماشین روحامی تکیه داده و زنی کنارش ایستاده است حاجی مزاحم نمیشیم خانواده محترم چه مزاحمتی آقا رحمان بفرما زن آقا رحمان به استقبالم میآید و رویم را گرم میبوزد روحامی در جلو را برای آقا رحمان باز میکند آقا رحمان به آرامی سوار می شود و چوبهای زیر و را طوری می گذارد که سر آنها به پشت صندلیش می رسد. پتو را روی پاهایم می کشم. خانوم آقا رحمان کنارم می نشیند. از می گوید. ببخشید تو رو به خدا. مزاحم شدیم. می گویم. چه مزاحمتی. و هرچه فکر می کنم کلمه دیگری به یاد نمی آورم تا شرمساری خانوم آقا رحمان را از بین ببرم. آقا رحمان بدون اینکه که برگردد میگوید ببخشید خواهر روحامی این اولین بار از کسی مرا به نام او میخواند. دست و پاییم را گم می نمیدانم چه بگویم روحامی به جایی من می گوید. راحت باش آقا رحمان سکوت داخل ماشین را روحامی می خب خوب آقا رحمان پا هنوز نرسیده؟ نه حاجی مگی یکی و دو تاست؟ تازه ایجا که نمیسازن سازن. اندازه رو می خارج اوجا می سازن. حالا آجی خدا کنه اندازه بسازن. روحامی می, می انشالله اندازه میسازن ماشالله شمسایی که یادتون هست. بله آقا ماشالله. یه هفته پیش دیدمش. پا داشت. ولی هنوزم از چوباش استفاده می کرد. می گفت پا مصنوعی پاش زخم و زیلی کرده. خیلی می نانید. خیلی خیلی. روحامی دست میگذارد روی شانه ی آقا رحمان و میگوید اولش سخته. کم کم عادت میکنیم خدا کنه. یاد روزی میافتم که تشی جنازه سه شهید از اشایر شمسایی بود. مدارس منطقه رو تعطیل کرده بودند. و جمعیت زیادی پشت تابوت‌هایی که با پرچم سرنگ پوشیده شده بود، حرکت میکردند. به میدان توحید که رسیدیم، تا زمین گذاشته شد. جوانی که میکروفون به دست داشت، از همه خواهش کرد روی زمین بنشینند. قبل از آن که بنشینیم، ملیحه آهسته به گوشم گفت میای در میدانستم بعضی از بچه ها در همین بلبشه نشستن و ایستادن در میروند. گفتم نه ملیه گفت، تو هم حوصله داری؟ مگه یادت رفت اون بار پشت اون لنک روز؟ کمر برامون نموند؟ گفتم، بدم نبود، من که اولین بار بود یخم رو می دیدم. ملیه گفت، پس من رفتم. آهسته روی زمین نشستم و چادر زن جلوی را کشیدم. زن برگشت نگاهم کرد و نشست. روحامی رو به روی جمعیت ایستاده بود و از مقام شهید حرف میزد. شهید شاهد روزگارش است. کسی که جانش را میدهد تا آرمانش بر جای بماند. جان را تنها با ایمان و آرمان می توان تاخت زد. شهید با خدا معامله می کند. خونش را میدهد، جانش را میدهد هستی مادیش را میدهد تا آن چرا جاودانه است بیابد. جاودانگی در این جهان و در آن جهان. آنجا فرزندان شما جانشان را خالصانه تقدیم انقلاب می کنند و اینجا پشت جبهه شیطان مهار نفس برخی را در دست می گیرد و آنها را به بیراهه می وای از سلطه نفسم ماره که آدم را به اسفل و صافلین می و او را بنده نفس و شهوت می کند متاسفانه جوانی که امروز به حکم قاضی شهر در این میدان حد زده می شود است که بنده نفس خود شده است. البته این جوان توبه کرده و محتاج دعای خیر شما مردم است. پچپچه ها آج می گیرد. سخنان روحامی را نمی شنبه. نمی شنسی؟ پسر کلخیرولاست. از زن اولش. دخترموش بوده؟ حامل هست؟ نه. خب از چرا شلاقش میزنه؟ وادارنش تا بگیرتش. نمیگیره. میگه کار اون نبوده. چند نفر بودن؟ او روسیه رو باید شلاق بزنن. نه ای رو. اونم میزنن تو زندون. بزنن بلکه جوان عبرت بگیرن. جوان را میآورند سرش را تیغ انداختند لاغراندام و رنگ پریده است جوانی که قبل از روحامی از مردم خواهش کرده بود بنچینند دکمه های پیراهنه او را باز میکند جوان حراسان به جمعیت نگاه میکند روی تخت فنری میخواباندش دو جوان دیگر به کمکش میآیند پیکر جوان را نمی صدای التماس جوان در شعار مرگ بر آمریکا گم می شود. صدای مردم کم کم خاموش می شود. در عوض ناله پسر جوان به گوش می رسد. کابل سیاه را می بینم که بالا و پایین می رود. جوانی که شلاق می زند. اینک به چشم دارد. و هر چند لحظه یک بار با انگشت اینکش را به جای اولش باز می کردند. صدای حقیقت زنی را از پشت سر میشنوم. باز میگردم به پشت سر نگاه میکنم شاید چهره ی زن را ببینم. زنی چادرش را روی سر کشیده و شانههایش میلرزد. حدس میزنم از خانواده شهدایی است که تابودشان جلو جمعیت روی زمین است. با خداحافظی زن آقا رحمان به خود میآیم در تمام طول راه یک کلمه با او حرف نزدم. ماشین که راه می افتد روحامی در آینه نگاه میکند. خوبی؟ چیزی نمیگویم. هنوز در فضای آن سال و شلاخ خوردن آن جوان و گریه آن زن هستم به صرافت می افتم به یاد بیاورم در لحظاتی که جوان شلاخ می خورد روحامی چه می گرد؟ چهره ها وار از خاطرم می نمیتوانم پیداش پیدایش کنم تنها به یاد میآورم. در آخر مراسم او را سوار لند کوروزارری دیدم که تابوت شهدا پشت آن بود. به خانه می رسیم پیاده می شود و در را باز میکند. دیگر می کند دیگر میدانم نباید وقتی بیرون از خانه هستیم از ماشین پیاده شوم وقتی پیاده می شوم سرم گیج می رود و چشمم سیاهی می رود فوری روی زمین می نشینم و سرم را در دست های می گیرم روحامی کنارم می نشیند. چی شده؟ چشمم سیهی رفت. بازویم را می گیرد. بلنش رو بریم تو. از صبح تالایی هیچی نخوردی؟ اون خون دماغ لعنتی ساکت می شود. چادر و کیفم را می گیرد و از راهباری که میان ردیف درختها می کند. وقتی وارد حال می شویم، چادر و کیفم را گوشهی می اندازد. برایم بالش میآورد و کمک می کند دراز بکشم چنان احساس ضعف می کنم که جنگ را فراموش می کنم میگویم یه لیوان آب قند می گریه روسریام را رو باز می کند. موهایم را نوازش می کند و پیشانیم را میبوسد همین الان چشمهایم را رو روی هم میگذارم. حالت و باز هم به سراغم آمده سردم است و احساس می کنم از درون می لرزم. را که میآورد یک نفس آن را سر می کشم. دوتا پتو. خدا کن سر نخورده باشی. پتوها را رویم می اندازد. کم کم گرم می و چشمهایم روی هم میآید. می خوابم. در خواب پدرم را در مرغزار میان گندم تازه خوش بسته می بینم. ایستاده است و با فریاد چیزی از من میخواهد من منان سوی مزرعه ایستادم نمیدانم پدرم چه میگوید. ظاهرا ناهارش را برایش آوردم شروع می کند به دویدن هرچه نزدیک تر می شود چهرش به چهره سمد چوپان شبیه تر می شود. وقتی نزدیک می شود لیلی می کند. از میان مزرعه گندم که بیرون می آید و روبرویم می ایستد. سمد چوبان را می بینم که یک پاچه شلوارش در بادتکان می خورد. جیگ می کشم. با صدای جیغ خودم از خواب می پرم. دست راستم زیر سرم است. مور مور می کند. روحامی صدایم می کند. گل نهار حاضره. بلند میشوم بابوی کباب دوباره حالت تحواب و سراغم یاید، برایم به رنج می کشد و چند تکه کباب رویان می گذارد. کباب نه، برات خوبه، نه، اصرار می نه، خب پس چی میخوری؟ نون و ماست، نونو ماستن شد غذا. چیزی نمیگویم ضعف دارم ولی فکر میکنم همین جمله می توانست آتش جنگ را تیز کند اگر می توانستم بگویم من با نان و ماست بزرگ شدم بعدها خیلی بعد فکر میکنم فقر من کینهای در من نسبت به زندگی مرفه خوراک خوب لباس مناسب جای راحت و خیلی چیزهای دیگر ایجاد کرده بود من در تمام مدتی که با روحامی زندگی می کردم، از فقرم مجسمه بلورینی ساخته بودم و آن را دست ما او قرار داده بودم. صبح ساعت هشت از خواب بیدار می شوم صبحانه را خورده، لباس پوشیده و مطالعه می کند. صبح خیر، می دوم طرف ظرفشویی آشپزخانه آشبسخانه، اوقع خوشک می زنم. صدای قهقه اشرا می شنوم. صورتم را آب میزنم و کمی آب میخورم. روبروی روی آینه حال میستم می و به بینیم نگاه میکنم. برمش کمتر شده. بلند میشود و پشت سرم میستد. می اولین بار است صورت خودم و او را کنار هم میبینم. ذهنم مقایسه میکند. بینیش. بینیم. دهانش. دهانم. چشمهایش. تشم هایم پیشانیش پیشانیم موهایش موهایم دست میگذارد روی شانم و به تصویرم دری نمیگوید گل حاضرم قصاص بشم میتونه هر چی قدر میخوای منو بزنی اونقدر که دماغم کوفت تبریزی بشه دست میگذارد نو که بینیش و آن را پهن می کند. چهره خنده دار می شود. به تصویرش در آینه می گویم. ما دسته بزن نداریم. ما همیشه خوردیم. می چرخم و از آینه دور می شود. دستم را می گیرد و به صورتش می کوبد. بزن. تو رو به خدا بزن. من از زخم زبان خوشم نمیاد. هر زخمی خوب میشه ولی زخم زبان همیشه تازه است. بزن. نزار تصویر در ذهنم بشکنه نظر فکر کنم با یه دختر قرقه رو کردم که زبان شمشیر دودمه بزن دلتو خالی کن فحشم بده هر کاری میکنی بکن ولی زخم زبان نزن خواهش میکنم دستم رو از دستش بیرون میکشم من واقعیتو گفتم تا یادم هست همیشه خوردم از توران خانم زن عزیز الله مادر اختر از خانم سلطان امه اختر از امیر برادر اختر از اختر وقتی معلم بازی میکردین از مادرم وقتی بیوه شد از معلم هم وقتی شپش روی رو سریم یا پشت گردنم میدیدن از خانم نازم وقتی لباس فرم نمیپوشیدم یعنی نداشتم که بپوشم از حیدر وقتی فریاد میزند بس کن کیفش رو بر میدرد و تنده عصبی حرف میزند سپونتو بخور اگه به خودت رحم نمیکنی به کنی اون موجود بیچارهای که به خودت داری رحم کن ناهار بخور. ممکنه امروز دیر بیام توی فرمانداری جلسه داریم باید جواب آزمایش رو بگیرم. منتظر می و نگاهم میکند می کند. لابد میخواهد تأثیر حرفهایش را بشنود و ببیند. حرفی نمیزنم. به دیوار تکیه می دهم و بارشته ی از موهایم بازی میکنم وقتی حرف میخواهد ترجیح می دهم سکوت کنم. رو میزد. شب با هم حرف میزنیم. همه چیز درست میشه. توکل داشته باش. برخلاف روزهای قبل بدون اینکه موهایم را ببوسد از خانه بیرون میرود. جنگ دو طرفه شده است. صبحانه میخوررم سفره را جمع میکنم کیفم را میآورم. عکس دکتر شریعتی را از قفسه کتاب ها برمیدارم با دست گرد و قبارش را می آن داخل کیفم میگذارم، در چمدانم را باز میکنم، ماهی سیاه کوچولو، نامه های محسن به ملیه، نامه و داستان سعید را برمیدارم توی کیفم میگذارم، حلقه را از دستم در می آورم، روی کاغذ می نویسم، به من مهلت بدهید. هرچه فکر میکنم جمله دیگری به ذهنم نمیرسد جز، کسی که به شما احترام میگذارد، محمدجانی. حلقه را رو روی کاغذ می گذارم و هر دو رو وسط حال چادرم را بر می دارم. از خانه بیرون می آیم که برای قفل کردن در ندارم اهمیت نمیدهم راه باری که میان درختها را به سرعت طی می کنم به در حیات میرسم در قفل است دلم می برگردم و روی کاغذ بنویسم پرنده از قفس پرید. منصرف می شوم به وارسی دیوار می پردازم بلند است. چشم به یه نفت کنار دستشویی می افتد. چادرم را جمع می کنم به سختی به بالای بشکه می و از آنجا خودم را روی بام کوتاه دستشویی می کشم. تو کوچه کسی نیست اما ارتفاع زیاد است مینشیننم. به سر بچه چهار و پنج ساله از انتهای کوچه میپیچد و نگاهم هم می کند اول چادر و کیفم را روی زمین می و بعد خودم می پرم. بلند می شوم. به سرعت چادرم رو روی سرم می اندازم و کیفم را برمیدارم پسر بچه در تمام مدت نگاهم می‌کند. وقتی به او میرسم لبخند میزنم و رویم را رو محکم می گیرم حوسه همکلاسی‌های هم کلسی های مدرسه و آشناها را ندارم به خیابان می رسم موسا راننده را می بینم که با جوانی حرف می زند به سویش می روم بر سر کرایه چانه میزند صدایش می کنم بر می گردد و نگاه می‌کند. اول نمیشناسد و بعد ناگهان به طرفم میآید گلبانو خانم شما هستین؟ نشناختمتون می خوام برم شمسابات جوان می گوید؟ باشه بابا حالا بریم با هم کنار میایی. موسا به جوان محل نمیگذرد تنها هستین گلبان و خاانوم؟ که تنها هستم وسهصل است جوان میگوید. باشه بابا همون که گفتی موسادر را باز میکند بفرمایید این اولین بار است جلوی وانتبار موسی راننده سوار میشوم همیشه قسمت بارش سوار میشدم. موسا برای جوان دستکان میدهد و ماشین از جا کنده میشود تا به جاده شمسواباد برسیم حرفی نمیزند وارد جاده که میشویم میگوید و خانم جسارته چرا تنها؟ هاجاغا که ماشین دارن؟ اول فکر میکنم بگویم هاجاغا معمولیت است. اما میدنم موسی راننده که دائم در خیابان شهر پلاس است حتما صبح او را دیده است. میگویم سرش شلوغه. با ننه کار واجبی دارم. چیزی نمیگوید. سه ماه است روز جاده شمساباد را ندیدم. حدود یک ماه پیش شب بعد از شام، وقتی گفته بودم دلم برای داوود تنگ شده، گفته بود پاشو بریم ببینیمشون. آن شب، وقتی برای اولین بار بعد از علوسی به خانه مادرم پا گذاشتم. از تغییراتی که در خانه ایجاد شده بود جا خوردم. مادرم اتاق معلم ها رو فرش کرده بود و دور تا دور آن پشتی چیده بود. وقتی روحا می نشست، مادرم دو بالش با روکش مخمل قرمز کنار دستش گذاشت و گفت راحت باشین ها جقا؟ داود دو زنو جلو در نشسته بود و من به یاد نشستن خودم و مادرم در خانه عزیز الله بگفتادم خودم را به طرف داوود کشیدم سرش را در بقل گرفتم و گفتم کاکای خوبم چطوره؟ داوود خودش را از آغوشم بیرون کشید و گفت خوبم روحامی گفت خوب آقا داوود چه خبر؟ داوود گفت، سلامتی آجاقا مادرم وقتی سینی آینه و قرآن را جلوه روحامی گذاشت، روحامی نیمخیز شد و گفت، چرا زحمت میکشیم بیبی خانم؟ از عنوانی که به مادرم داده بود، خوشم آمده بود، و از اینکه مادرم آینه و قرآن را جلوه او گذاشته بود، دلخور شده بودم. روحامی قرآن را بوسید و سینی را به طرفم سرند، توی نلبکی کنار آینه دو سکه رنگ و رو رفته بود. قرآن را بوسیدم، آینه را برداشتم و مقابل صورتم گرفتم. ابروهایم پر شده بود و من دلم می فضای رسمی را بشکنم. گفتم، نگاه کردن در آینه مصحبه. آینه را به طرف روحامی گرفتم. آینه را گرفت و موهایش را مرتب کرد. مادرم به داوود اشاره کرد و هر دو از اتاق بیرون رفتند. روحامی آینه را به طرفم گرفت و آهسته گفت خوشگلا باید تو آینه نگاه کنن. آینه را جلو صورتم گرفتم و گفتم چشم حسود بدتره که. آهسته گفت آمین. داوود با سینی چای وارد اتاق شد. مادرم پشت سرش بود. سینی چای را از داوود گرفتم و آن را وسط اتاق گذاشتم. مادرم سینی را برداشت و جلو روحامی گرفت. روحامی سینی را از مادرم گرفت و آن را بین خودش و من گذاشت و گفت زحمت نکشیم بیبی بی خانوم، خودمون بر داریم. احساس کردم فکرم را خوانده است. از اینکه مادرم و برادرم جلوش خم و راست می شدن ناراحت بودم. مادرم دو سکه توی نلوکی را برداشت و به طرفم دراز کرد و گفت قابل نداره، شاهباسیه، سکه شاه عباسی را بر نداشته بودم توی جیب چمدانم بودند موسی راننده گفت گلبانو خانوم میخواستم یه خواهشی بکنم فرما آقا موسا حقیقتش میخواستم ببینم حاجاقا میتونه یه سفارشی برای معافی عباسو بکنه الان شیش ماه دنبالش میدوییم ولی خودتون میدونین که زمان جنگ معافی گرفتن خیلی سخته شما که میدونین بابام سالهاس رو جا افتیده نه نه که حال روزش معلومه اگه عباسو ببرن سربازی ای دوتا تکیه زمینم از دستمون میره میگویم باشه آقا بهش میگم اینشالله همه چی درست میشه وقتی جلوی مغازه مادرم پیاده پیادم میکند هرچی اصرار میکنم کرایه نمیگیرد در عوض برای مادرم بوق میزند و دستکان کام میدهد های مادرم در هم میرود مغازش آن دکان سابق نیست گروپ پیمان است وی خدا مرگم بده تو ایجا چه کار میکنی؟ یعنی ما حق نداریم سری به خونه ای مادرمون بزنی؟ من این موار تو آسیاب سفید نکردم دختر تو اومدی به مادر سر بزنی یا قر کردی؟ حالا فرض کن قهر کردم دختر که قهر کنه میره خونه مادرش دیگه روم سیا تو قر کردی؟ خدا ازت نگذره دختر بیچارمون میکنی آقبت مادرم از پشت دخت بیرون میآید و در مغازهش را میبندد از همی رایی که اومدی برمیگردی من دختر ندادم که پس بگیرم یعنی من نمیتونم خونه پدرین بیام؟ خونه پدرید؟ او گور به گور شده خونه نداشت خونه پدری ها؟ به طرف در میروم بازویم را میگیرد به خداوندی خدا قلم پات میشکنم من زن بیوه یه خونه راه نمیدم بازویم را از چنگش بیرون میآورم. همه مادر دارم ما هم مادر داریم ای خاک تو سرت که خوب و بد خودت نمیفهمی دختر همه افسوس تو رو اونایی که تا به حال شلوارای گویشون رو نمیدادن بیبی خوابر بشوره حالا دم ساعت دمت کب میدن او وقت تو ای خدا بیم خودم میورمت یا الله تو فکر کردی دختر دورانخانی بدبخت لغت به بخت و اقبال خودت نزن لا کردار تازه داره او خونکی از گلومون پایین میره چرا میخوای خودت او یتیم بیچاره رو بدبخت کنی حالا من هیچی من روسیا که همیشه بغز مادرم میترکد با گوشه چادرش چشمهایش را پاک میکند روغه زن کلباس از روبرو میآید. مادرم ساکت می شود به ما که میرسد رسد میگوید؟ خدا بد نده بیبی خاور. بد نبینی مشرغگه. آدم سگ بشه مادر نشه. گلبانو رو دیشب حاجاقا اوورد گذاشت خونه. رز خانوم دلش برا شوهرش تنگ شده. هرچی میگم یکی دو روز بمون می گی نه حاجی تنهاست اینم از اولاد مشرغگه به دقت نگاه هم میکنه. گلبانو اقبالت بلند بود خو خدا رو شکر کی میدونه پیشونی نوشتشیه مادر بی است بدون خدافزی راه می مشروقی میگوید میگوید گلبانو هاجاغا نمیتونه برای حسینیه یه کاری بکنه بیبی خواهر بشت گفته یه شب دوباره همون مرد سبزپوش به خون اومد گلبانو خیلی نبینم ایه دروغ بگم ساده بود وسط حسینیه قدیمی صورتش قدرت خدا قوس قزه نورانی مادر صدایم میکند می کند مشروقه یه می گوید. گفت سید خانم مگه من نگفتم ای حسینیه مادرم می گوید غیه. همه چی رو برا گلبانو گفتم اینشاله حاجی یه کاری میکنه میگویم خداحافظ گویم خدافز مشروقه با بیمیلی جواب میدهد خدا به همراه راه می افتن. صدایش اش را می شنبن. به حاج بگو جای دوری نمیره به مادرم می رسم زنی که هر شو خوب می بینه. فقط حاجی رو تیک نزده که اینقدر حاجی حاجی نکن چرا نکنم؟ مایی افتخارمه از خاک سرنشینی نجاتم داده بدبخت نمیفهمی؟ فهمی اگه غلط نکنم سگ پدر یه کاری کرده باید فزدکو رو ببینم فکر میکنه من دختر دمبختم و نگه می داشتم برای پسر نکبت اون شاید ای جنگ صد سال طول بکشه دختر ویل کن اینقدر پشت سر مردم حرف نزن حرف نزنم؟ چرا نزنم؟ ماشین موسی راننده را می بینم که به طرف ما میایی تو هیه آب داری به فکر آبروی او بنده خدا باش به موسای راننده اشاره میکنم. برو به چست به زندگیت یه لقمه بخور صد تا لقمه صدقه بده چی کم داری؟ برو خدا رو شک و سری تو سرو سر بلند کردی کسی خودت شدی؟ موسای راننده کنار من ترموز میکنند. به مادرم می گویم خدا حافظ بازویم را می حاجی اگه به فهم سوار ماشین ای مرده شدی بازویم را از چنگش خلاص میکنم و سوار میشوم. مادرم میآید جلو به شیشه میزند بل باشد بیام نه خودم میرم